باستان 24 مه 2008 در طول فصل بهار در خانه زیبای خانواده روبینشتاین، کسی که صبح زودتر از بقیه بیدار میشد به آشپزخانه میرفت و صبحانه را آماده می کرد الا بود معتقد بود صبحانه مهمترین وعده غذایی است در یکی از مجله های زنان خوانده بود بر اساس یکی از بررسی ها خانوادههایی که به طور منظم صبحانه میخورند در مقایسه با خانواده هایی که اعضای آن صبحانه نخورده از در خانه بیرون میروند و روز خود را با شکم گرسنه شروع می کنند خوشبختترند و سازگاری بیشتری دارند الا با آنکه به نتیجه این مقایسه اعتقاد کامل داشت، هنوز آن سبحانهای های لذت بخش را که در مجله درباره مینوشتند، خودش تجربه نکرده بود. در خانه خودشان سبحانها، ها، آن قدرها هم لذت بخش و توان با سازگاری نبود. یعنی هر کس ساز خودش را میزد. یکی نان توست با مربا را ترجیح میداد مثل جانت، آن یکی کنفلکس اصلی را دلوپی می میخورد مانند ایوی، یکی نیم روی خوب سرخ شده دوست داشت مثل دیوید چهار رومی هم پافشاری میکرد که هیچ چیز نخورد مثل اورلی. با این حال باز هم صبحانه در نظر الله مهم بود هر روز صبح بدون خستگی صبحانه همه را آماده می کرد. این اینطوری با خودش می‌گفت دیگر بچه‌ها مجبور نمی‌شوند در مدرسه حلهوله بخورند و از اینکه وظیفه مادریش را درست انجام داده به خودش می‌بالید اما امروز صبح وارد آشپزخانه که شد جایی آنکه مثل همیشه صبحانه را آماده کند آب پرتغال بگیرد و نان توست کند، پشت میز آشپزخانه نشست و لپتاپش را باز کرد. همین که ایمیل هایش را از نظر گذراند، لبخندی درخشان صورتش را پوشاند. ایمیلی که انتظارش را میکشید آمده بود. عزیز زهرا جواب نامش را داده بود. اللای عزیز خیلی خوشحال شدم که با دخترت آشتی کرده ای. من هم امروز صبح از ممستنانگو حرکت کردم. خیلی عجیب بود. اینجا چند روز بیشتر نمانده بودم. اما موقع خداحافظی که رسید دلم گرفت. این روستای کوچک گواتمالا را بار دیگر با می میبینم؟ فکر نکنم. هر وقت جایی را ترک می کنم انگار بخشی از وجودم را جا گذاشتم چه مثل مارکوپولو دنیا را بگردیم چه از گهواره تا گور توی خانه بمانیم فرقی نمی کند برای همه ما زندگی رشدی از تولدها و مرکاست آغازها و پایانها برای تولد لحظه ای باید لحظه پیش از آن بمیرد. همانطور که برای زایش من جدید من کهنه باید پژمرده و خشک شود. پیش از ترک متنناگو به مراقبه پرداختم. غرق تفکر شدم. به تو فکر کردم به دوست جدیدم در بوستون. معتقدم در اطراف هر انسانی، حالی از رنگهای مختلف است. چشمهایم را بستم و کوشیدم رنگهای ترابیابم. خیلی نگذشته بود که سه رنگ پدیدار شد. زرد گرم، نارنجی خجالتی و بنفش لبفرو بسته. به نظرم اینها رنگهای توست. خیلی هم قشنگند. هم جدا جدا هم با هم. آخرین ایستگاه هم در گواتمالا قصبه کوچکی به نام چاخول است. خانه های اینجا آجری است و چشم های بچههایش درشت و سیاه. نگاه از خودشان پیرتر است توی هر خانه ای زنهای پیر و جوان همگی گلیم می بافند. من هم از پیر زنی برای تو گلیم خریدم. به زن بینوا گفتم برای خانمی اهل بوستون هدیه میخرم. برای همین در انتخاب کمکم کن. مدتی فکر کرد. بعد از تل گلیم های توی خانهش تکی بیرون کشید. قسم می خورم. آنجا بیش از پنجاه تخت گلیم با هر نقش و رنگی بود. اما گلیمی که پیر زن برای تو انتخاب کرد فقط سرنگ داشت، زرد، نارنجی و بنفش. تصادف عجیبی است مگر نه؟ البته اگر در کائنات چیزی به اسم تصادف وجود داشته باشد. تا به حال به این فکر کرده ای که آشنایی ما در دنیای مجازی هم ممکن است تصادفی نباشد، قربانت، عزیز بعد تحریر اگر بخواهی می توانم گلیمت را با پست بفرستم یا روزی که در بوستون قهوه می خوریم همراه خودم می آورم بعد از خواندن نامه صورتی دلنشین روی گونه های الا نشست چه قشنگ می نوشت عزیز گرم سمیمی همانطور که بود چشمهایش را بست کمانهای رنگی که بدنش را احاطه کرده بودند در ذهنش مجسم کرد عجیب است الایی که در ذهنش پدیدار شد الای هفت ساله بود نه الای بالغ فعلی خاطرات ناگواری که گمان می‌کرد. خیلی وقت پیش فراموششان کرده دوباره جان گرفتند. کودکیش را یاد آورد، آزردگیش، تنهاییش را، مادرش را به خاطر آورد. پیش سبز مغز پستهی به تن، قالب کیکپزی گرد به دست، ماسکی به رنگ خاکستر به صورت، با اندوهی بی جلو در آشپسخانه ایستاده و همانجا ماتش برده اول الا بدن بیجان پدرش را پیدا کرده بود دلها، توپها و های رنگی از سقف آویزان بود همه جا برق می زد، بود و جسدی آن وسط از سقف آویزان بود طوری که انگار می‌خواست با تزیینات نو یکی شود پدرش خودش را دار زده بود الا در ایام جوانی مادرش را مسئول خودکشی پدرش می‌دانست و هنوز دختری جوان بود که به خودش قولی داد قول داد اشتباه‌های مادرش را تکرار نکند و ازدواج که کرد شوهرش را خوشبخت کند قرار بود زندگی زناشوئیش تا آخر عمر ادامه پیدا کند و مثل زندگی پدر و مادرش کوتاه نباشد شاید هم به همین دلیل یعنی صرفاً برای آنکه زندگی زناشوئیش متفاوت باشد مثل مادرش با مردی مسیحی ازدواج نکرده بود و خواسته بود با یهودی همدین خودش ازدواج کند و دیوید را به شوهری انتخاب کرده بود. زمان زیادی طول کشید تا رابطه الا و مادرش خوب شود. در اصل تا همین اواخر از مادرش نفرت داشت. اما چند سال پیش تصمیم گرفت گذشته ها را فراموش کند. از احساس خشم دیگر خسته شده بود. بار سنگینی بود خشمگین بودن از دست گذشته. مادر اوهوی، الو الو از زمین به مادرم از زمین به مادرم جواب بده مادر الا همانطور که در آشپزخانه نشسته و به فکر فرو رفته بود، یک دفعه با صدای کرکر خنده جا خورد. همین که برگشت، چهار جفت چشم دید که موزیانه نگاهش می اورلی اورلی، ایوی، جانت و دیوید. لابد هر چهارتا با هم برای صبحانه آمده بودند. الان کنار هم ایستاده بودند و طوری نگاهش می کردند انگار در حال بررسی موجودی عجیب الخلقه هستند با توجه به حالت صورتشان پیدا بود خیلی وقت است آنجا ایستاده‌اند و سعی کردهاند توجه الا را جلب کنند اورلی گفت مامان چی شده دو ساعت است صدایت میکنیم انگار صدایمان را نمی شنیدی. دیوید در حالی که سعی می کرد جای دیگری را نگاه کند. زیر لب گفت چرا اینطور زل زدهی به مونیتور؟ الا به جایی نگاه کرد که شوهرش داشت نگاه می کرد. ایمیل عزیز زهارا در مونیتور همانطور باز مانده بود. تند لپتاپش را بست و گفت برای مؤسسه انتشاراتی باید کلی مطلب بخونم گزارشم را باید به موقع تحویل بدهم میدانی روی این رمان کار میکنم ایوی با لحن بسیار جدی گفت اما گزارش نمینوشتی که خودم دیدم داشتی ایمیل هایت را میخواندی صورت الله سرخ شد. چرا بچه ها به سن بلوغ که می رسند دوست دارند اشتباهها و کمبوت های بزرگترها را پیدا کنند؟ اما به هر حال به نظر می رسید دیگر اعضای خانواده علاقه شان را به این موضوع از دست دادند. همه سرشان را برگردانده بودند و به پیش خان خالی نگاه میکردند ارلی کنچکاوانه به طرف مادرش برگشت و حرفی را که توی ذهن همه می بر زبان آورد. مادر امروز صبح برای ما صبحانه درست نکردی. باورم نمی شود. این حرف انگار الا را گیج کرده بود. دورو برش را نگاه کرد. نه از قهوه جوش بخار بلند می شود. نه تخم مرغی روی اجاغ گاز بود توستر هم که خالی بود راستی چه اتفاقی افتاده بود که زنی که هر روز صبح مثل آدم آهنی صبحانه حاضر میکرد، امروز صبح فراموش کرده بود صبحانه درست کند آن لحظه الله فهمید فکر و ذهنش پیش عزیز است برای آنکه آن لحظه نه در آن خانه بزرگ و لوکس، بلکه در گواتمالا پیش او باشد چهها که حاضر بود بدهد